مسئله بعدی تعدد ازدواج نبی کریم صلی الله علیه و چرا ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و زیاد ازدواج کردند اینها رو قبلا هم خیلی از بحثها ها رو گفتیم و خیلی از این ا صبحات و, و حکمت‌ها رو گفتیم یک کم ای حکمت‌های بعدی رو الله رب العالمین میفرمایند که ولکم فی رسول الله اسوته حسنه برای شما در زندگی نبی مکرم اسلام یک نمونه خوبی وجود داره یک الگو برای شما هست پس نبی کری الگو هست کجا الگوی در زندگی در تمام شوباعات زندگی الگو در اخلاق الگو در سیاست الگو در بیان در یک امارت که امیر باشن به حیثیت یک امیری عمل کنند الگو برای حیثیت یک پیغمبر الگو به یک رجل سیاسی الگو به خاطر به حیثیت یک مرد فرد اجتماعی اونجا الگو در زندگی شخصی اونجا هم الگو در زندگی جتماعی اونجا هم الگو در باطن هم الگو در ظاهر هم الگو در هر جهت نبی کریم الگو هست برای انسانها یعنی الله میگه و در کنار همسران چی حیثیتی دارند و ازواج امهاتهم ازواج متعارات مادرانند و همسران پیغمبر مادران امتان. خیلی ها که اونها رو مادر نمی مادر قبول نداره اونها رو به حال ما که پیغمبر قبول داریم اونها هم پیغمبر قبول دارن، اما مادران و مادر قبول نمیکنن. ما همه رو قبول میکنیم. تمام تمام ازواج متحرات مادران امت هن. پس وقتی مادر شد مادر حقوقی داره حقهای مادر داره حقوق مادر و بعدها انشاءالله میگم اما اینجا ف... چون فضائل از متحرات اونها رو در بحث جداگانه توضیح میدیم اینجا فقط حکمت ها پس در بین حکمت‌های خیلی زیادی گفته شده چندین جلسه و چندین ماه است در مورد حکمت ها از ماه از فصل زمستان تا حالا در صحبت میگونی یک از حکمت بعدی رو بگین گفت نبی کریم صلی الله علیه و الگو در زندگی فردی هم الگو پس اینجا زندگی فردی نبی کریم رو باید ما ببینیم و بدانیم تا از او به خط بگیریم الگوبرداری گوبرداری بکنیم زندگی خود را تطبیق بدیم این زندگی شخصی نبی کریم زندگی شخصی هر نفری خیلی حساس تر هست از زندگی اجتماعیش چه انسان در یک عالم دیگر زندگی میکنه، بخش آزم زندگیش زندگی فردی خودش هست و زندگی فردی یک نموری هست برای زندگی اجتماعیش اینکه که جلوی ما کسی اومد ظاهر شد که ای خم کرد و یه ناکرچاکریش شو قربون صدقه رفت این علامتی نیست که انسان واقعاً اخلاقش خوب باشه اگر با کسی که همیشه معاشرت داره اگر زندگی فردی خودش زندگی سری خودش خوب بود زندگی اجتماعی قطعا بهتر میشه خیلی ها ظاهر خیلی خوبند اما باطنشو خیلی خرابه خیلی کثیفه. اگر کسی خلوتش از اون جلوتش بهتر بود این انسان کاملیه اگر تنها, تنها خودش با خدایش زمان خودش با خانوادش اونجا اقیه انسان اونجا رعایت کرد اونجا خودش بنایه حاکم داره معرفی میکنه چون هر کسی یک نوع حاکمیت داره بعضی حاکمیتی خیلی مختصرن کسی ازدواج نکرده حاکمیتی رو خودشه حاکمی رو خود ذات خودشه چجوری؟ چون اول حدیث داره کل لکم را. اما در کناره هر کسی نو حاکمیت داره نفس انسان بر این درست شده حاکمیت اولی انسان ضعیفتری حاکمیت بر خودشه بر خودش به این صورت تصرف در وجود خودش میکنه آرائش خودش میکنه، اصلاح مو میکنه، این داره روی خودش تصرف میکنه، یه حکمی داره روی خودش اجرا میکنه. اینکه باید ریشمن اینجوری باشه، باید مویمن اینجوری باشه، باید لباس من اینجوری باشه، گفتار و کردار اینجوری باشن، اون اجرای حاکمیت بر نفس اینجا. پس هر انسانی یک نوع حاکمیت داره. اما حاکمیت فرق میکنه از بعضی خیلی مختصره و از بعضی خیلی بزرگند. پس حاکمیت اولی چون در حاکمیت همه مشترکه اگر کسی اول باید روی خود جوری داره حاکمیت میکنه حاکمیت بر کجا؟ بر نفس ای میتونه این نفس کنترل کنه؟ یا نه هرچی نفسش در سردا داری عمل میکنه. این خیلی مهمه اگر کسی تابع نفس شده پس حاکمیتش خیلی ضعیفه این نمیتونه فردا رو افراد دیگر حاکمیت داشته باشه این خیلی سخت هم هست، خیلی سخت و دشوار هست و خیلی هم حساسه برای این وجود انسان، چون این است که انسان رو به چالش میکشه. اگر این اینو درست اجرا کنه، این اینو اولینش هست حاکمیت دوم دو بر خانواده. حالا وقتی حاکمیت هست در حاکمیت امر و نهی هست. امر میکنه، دستور میده، میدونه که من یه حقی بر این دارم. من بالاتر بر اینها هستم وقتی که حق داشته باشه توقع میره بالا توقعات بیشتر میشن و تا توقعات بیشتر باشند دستورات بیشتر میشه رضایت و ناراحتی اونجا بیشتر نمایان. پس اگر در حاکمیت خانواده این توانست که با وجود این که مقابلش در مقابل کی است فرزندان که هیچگونه اختیاری از خودشون ندارن تا ظواانی کودکان یا قبل از اینکه برن از خونه بعد از اون مخاطب خانمی هست که همیشه کجه سیاست خانومها که خیلی خطرناکه نه یا انسان رسوا می یا آواذ میکنن هر کار میتونن انجام بده خانومها رنگ خیلی راحت تغییر رنگ میدن خیلی راحت تغییر رویه میدن و خیلی هم فریبکار که نکید کن عظیم خداوند متعال میگه که کید خانم ها خیلی خطرناکه اما خیلی خوب هم هستن خیلی زیبا هم هستن اون خوبی ها زیادن، زیاد هم در کنار این چیزو دارن این عظیم یه جای نبی کریف فرمودم که خانم با اون زیرکی که داره با اون فریبکاری در وجودش گذاشته شده است همون انسانهای عاقل و خیلی فهمیدو رو هم راحت میتونن دور بزنن اینا. این چیزی هست که نبی مکرر اسلام فرم بودن که عقل انسانهای زیعق رو هم میروبایند باین اونها رو خام میکنن پس حاکم حاکمیت آقا داخل منزل ام مخاطب خانمی هست که راحت زیر بار نمیره با یک گریه اپور تازیب خالی میکنه با یک ناراحتی کلن تغییر جهت میده پس اگر کسی توانست داخل خونواده اینجا این حاکیبیت خودش یوری بیتونه اعمال بکنه و مطالبات چقدر در خونه معفض هستی بر حاکمیت میگه متعلبی پستها میشه چه مسئولیت ها بزرگ کوچه حاکمیت هم گسترده تا برسیم به حاکم شهر، حاکم استان، حاکم کشور حالا که بعضی ایک حاکیب در که حاکیب, حاکیب دنیا رو دارن مانند شیطان و شیطان بزرگ انگلستان و امریکا حاکمیت دنیا رو میخواهند. پس بعضی حاکمیت دنیا رو میخوان و شیطان که حاکمیت بر کل مخلوقات ها میخواست. بر اهل زمین حاکمیت میخواست. اینها نو حاکمیت ها هستند. اما اگر کسی توانست در, در این حاکمیت های خودش موفق بود این میشه نمونه. میشه اصوه. ال باید بررسی کنه چون انسان باید درست زندگی کنه نبی مکرر اسلام صلی الله علیہ وسلم اون زندگی شخصی و فردیشان را چه کسی برای ما معرفی میکنه چگونه باید بدونیم و چگونه باید نماینده برای کل انسانیت باشه این فقط وسیله همسران امکان پذیر بوده اهلبیت بیت امکان پذیر بود چون اون زندگی دروری نبی کریم را که یک نمونه کامل هست یک چراغ و یک راهنما برای ما در زندگی های شخصی با هست. با ازون متلع باشیم چگونه زندگی میکرد چگونه معاشرت میکرد چگونه مغاربت میکرد چگونه احکام و تعلیم میداد اینا فقط خانوم میتونی و اینها احکام هست حتی مقاربت کردن با همسران مسئله حیا هست خیلی ها نمیدونه احکام اسلام و الله فرموین جوری انجام بدید چگونه با مطلع بشید ما با اینها رو مسائل حیا رو از طریق حیا باید منتقل بشن خانمها که مرکز حیا هستند و اونها پس این زندگی را کسانی داشت منتقل می‌کردند اینها رو خانم‌ها منتقل می‌کردند زندگی شخصی مثلا از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنہ سوالی پرسیده شد که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم در خونه چگونه زندگی می‌کرد فرمودن که مهنت دکار خانه اهله، اهل یه کارخانه بوده چیکار می‌کرد گاه گوسفندو رو میدوشید چی کامی که گاه رو میدوخت لباسه خودشو رو از پاره بود میدوختن و چی کامی که پش شپش رو از لباسه ها میگیری بگه نبی شپش نه هرگز شپش نداشتن اما افراد مختلف با دین ها. از کور از بیابان از روستاها پیش نبی کنی و همه رو بغل میکرد همه رو به آغوش میکشید منتقل میشد این شفیع شابیل مبارک. این کار خودش انجام میداد شما این کار انجام میدید، می دوشید نه هرگز. کارها رو هر خودش انجام میداد. این هم فقط موسیل حضرت آیش صدیقه رضی الله تعالی عنها این اخلاق بیرون رفته، این جوری نبی مکرر اسلام زندگی می‌کردند. اخلاق درونی نبی کریم را این جوری. چجوری می‌خوابیده؟ چجوری استراحت در چه وقتی از شب مقاربت می کرد کی عالم متلع میشه هیچ کس نمیدونه الا کسی که در محرم ذات نبی کریم باشه اونو میدونه چرا یعنی ایک نو علم هست ایک نو دانش هست و ایک نو آداب و اخلاق هستین اصلا ایک حدیث دارین اگر نبی اسلام گاهی اول شب خواب میشه کس میخوابی اصلاح و آخر شب گاه گاهی برای نیاز بشری اقدام کرد اینو هر کس نمیدونه پس تا که با نشاط باشه تا که با نشاط باشه ارزا کامل میشه تا ارزا کاملتر باشه عفت بالاتر میشه پاک بیشتر میشه اینو هم نبی مکرم اسلام تعلیم هست چه وقت برسون میکه اولش برسون میکه آخرش برسون میکه از کجا باید بدونی اینو هم در ازواج مطهرات هر کسی به خودش منتقل میکرد به خانم ها میکردن، می ها به آقایون متقل میکردن. گاهی اول شب گسل می کرد گاهی آخر شب گسل می کرد احکام را نشان بیدا یا گاهی فرمودند که مقاره کسی خواست چند مرحله داشته باشه فهموند بعد هر مرحله غسل کنید یه حدی اقل وضو بگیرید، اتیاب خوشگوارتر از باختر هست یعنی بشور دوباره کسی نیاز داشت اقدام کند. همه اینها دارن از بیت نبوی دارن بیرون میرن. واج اینها به اقوام منتقل بشن. این دانشگاه نبوی که سر جهان برای, برای انسان سازی بشر سازی هست، بعد اینها رو بیرور میکنن. اینها دارن کی بیرور میکنه؟ از واج متطهرات دارن می میکنن. این حکمت بزرگش بزرگیه که اسرار درونی خونه رو دارن بیرور منتقل میکنن. نیاز است برای انسان تعلیم اینها علم. عبادت این است که انتشار علم در برا علم برای چی؟ برای انسانسازی، برای استفاده است. اگر علم برای استفاده نبود، درست نیست. مفید است اینجا. علم خوب اون است که به انسانیت برای استفاده میگه. علیکی کسی چیزی بدونه، عمل نکنه بیفایده هست. چیزی بدونه، به کسی نگه بیفایده فایده است. علم برای استفاده کردنه. پس باید به هر نحوی او انتشار داد. یک راه انتشارش این بود. مسئله بعدی قبایل مختلف اومدن در مدینه منبره باید مسائل را به قبایل مختلف انتقال میدادم مسله حیا هست هر مسئله مساله حیا نمیتونه از هر کسی بپرسه هر کسی هم اگه سوالی داشته حتی اگه مرد باشه از مرد بخواد سوال بپرسه هر سوال مرد از هر مردی پرسیده میشه حالا همه تو مردید مخاطبان ما دجادی سا حالا خانوما میشنوند اینارو هر خانمی هر مسئله از هر خانمی نمیتونه راحت بپرسه. این چیزی است که در وجود بشر هست حالا که اینجا نشستید نمیتون هر مسئله از هر کسی از اینجا که نشسته آقایون مسئله مردانی هم باشه نمیتون راحت بپرسی. هیا حیا مان نمیش مگر اینکه نگاه میکنی به اونها یک شخص معتبر معتمد اونو پیدا میکنید فکر میکنه این آقا سرربونو فاش نمیکنه این آقا در جواب سوال منو پیدا میکنه اعتماد میکنه سوال از ظلم میپرسیده. پس این از که اگر نبی مکرم اسلام ازدواج زیاد نمی این مشکل برای خیلی از قبایل وجود داشت علیه بخواست سوال پرسن مستقی نمی برن پیششی از خانمها هر کسی پیش قوم خودش مراجعه میکنه امروز هم به همین صورته. امروزی هم به همین صورت. علیه ماها که خیلی سه تغوایی که نداری اما حیال نمیذاره. فواخیچی هم همه نمی نمیذاره نگاه میکنین ببین آقا تو از خودم هستی چون بستگانم هستی از طرفه فواشم این مشکل رو من دارم خیلی جاها ما رفتی یه سری حج یکی از دوستان با من بود مشکلی برای ایجاد شده بود گفت که من مشکلی دارم هرچ که کوچ مسئله حج اگر هم مطرح نکنیش امکان حجش خراب بشه بعد تنها منو دید گفت که باید از تو بپرسن چون رازدار من توی سوال شو مطرح که مشکل شو حل کردم این یک موضوع هزاران چنین موضوع برایم پیشون هزاران دارم مطرح میکنه این راه چاره نیست اول اوزخایی با مسئله مطرح میکنه پس این در وجود انسان گذاشته شده انسان همین جور در عمل میکنه پس نبی مکرم اسلام یک روزی ای شخصی اومد مسئله پرسید مسئله پرسید که تلیه غسل کردن را نبی مکره اصلا فرمودند که حالا بعد غسل کردید دیگه پنبه رو با عطر استفاده کنید چونه استفاده کنه؟ این سوال برای خانم داره مفهوم نبود حل نشد مشکل غسل غسلی معذیوریت ها عادت ماهانه بود که حالا دیگه استفاده کن جورس وازو کړه چې جورس وازو کړه یعنی یعنی چې الپنبهي با عطر چې جورس وازو کړه اله کجا په سوره روچه کجا به کل بدن چه خزر دې سوال نه هزار تا احتمال وجود وشه یکازوا از دې مته حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورو کښیګو پیجا ور د پشت پرده ورته ور د فرامودې ان استفاده میکنه یعنی اورت را بشورید با Então, as uns tá